شخصیت مولانا محمد انور ملازی مولانا محمد انور ملازی یک عابد یک عابد بود یک متقی بود یک اهل الله بود اینجا رفتار این شخصیت ها چرا این حدیث بخونم داخل صحیح بخاری نبی مکرم صلی الله علیه و فرمودند که یق صالحون الاول فالاول صالحین یکی کی برداشت میشن و قاف و که حفالت الشعیر بعد طفالها میمونند والله یعوا الله بهم خدا اصلا پروا اینها نمی این حدیث داخل صحیح بخاری اومده یعنی چه یعنی فرعون صالحین و الله رب العالمین یکی بعد از دیگری برمیدارن. بعد از اون طفالها میمونند طفالها والله پروا اینها رو نداره یعنی یعنی اینکه تا زمانی صالحین وجود دارن الله رب العالمین برکت وجود اونها جلو عذاب میگیره مصیبت ها رو میگیره، فتنه ها رو نمیفرسته، صالحین وجود داره. آم وقتی صالح، چرا صالحی مگه چیکار کنن؟ عبادت گزار بودن، دعا میکردن، مندگان مقرب الله رب العالمین بودن، الله این ها رو ضعیف نمیکنه. و وقتی که این رفتن، تفاله همیونه، معنی تفاله های جو و گندم، حالا این ها مردم میذاره تفاله ها رو، دور میذاره. می آیا الله فر واين این رو نمیکنه. یعنی هر مصیبتی بیاد، الله فر واين هر مشکلی بیاد فر متاسفان خیلی افراد کورزین فوران دیگه انتقام میکنن اینها چیان؟ اینها چیان؟ تقدسگراه ها چیان؟ درست کردی؟ درست نکردی؟ اینها رو فرمودن تو سید بخاری حدیث اومده؟ یک بزا سالون الاول فالاول سالی یکی برداشته میشن پس این که وجود سالی، وجودی وجود خودش برکت هست اون دعایش جای خودش عبادت جا خودش عبادت میکنی منطقه منور میکنه قرآن خود تا حفظا منور میشه فرشته ها حلقه میبندن نماز میکنی فرشته ها نماز میخونن حلقه میبندن پس این منطقه امن میشه برکت الله رب العالمین بخاطر برقات عبادات شما برکت نازل میکنم هر عبادت داره تاثیری هست برکت نازل میکنن پس صالحین رو دوست میدارید محب با وصا میکنین پس اگر صالحی از منطقه بیرون شد این یک شکاف این شکاف بزرگ اونجا ایجاد میشه این شکاف اگر ایجاز شد اگر در صدی شکاف اومد آب اومد بیرون شهر ویران میکنه پس اینها شکاف شکاف برای چی؟ برای فتنها برای آسیبها برای عذابها ما نمیدونیم اما اینها این نظام دنیا یک نظام ظاهری همین داری ما میبینی که میچرخیم اما یک نظام غیبی هست اون نظام غیبی آمال ما تاثیرگذارند. و اون نظام غیبی نظام دیگری هست که اینجا که کل نظام حسی ما وابسته با نظام غیبی ما هست اگه اون نظام ما غرض شد زندگی ما تباه میشه پس رفتن صالحین یک سلمه هست یک شکاف هست که ایجاد میشه از این فتنه تا این شکاف دوباره پر بشه صالحی دیگر ایجاد بشه خیلی زمان بر هست ببینید که در علما بزرگی از اینجا وقتی میرن جای اونها خیلی احساس میشه اگه نکته بگم برای شما نگاه کن انجا علماي بزرگ خیلی داشتیم حافظ ابن حجر علامه عینی علامه دیوبند بزرگان بودن کتابها وجود دارن فتلباری باری عمو طلقاری صحیح بخاری صحیح مسلم اینها وجود هستن علم اونها وجود داره اما شخصیت اونها نیست وجود شخصیت یک تاثیر دیگری داره وجود شخصیت با علمش در دنیا یک دواره میمونه تاثیراتی هست اما وجودش داره تاثیر دیگر هست اینجا تا وجود هست خیلی باورکت پس خود مولانا محمد انور یکی از شخصیت ها یکی از اهل الله بود شخصیتی گمران بود اما وجود اینا برای شهر ما برکت بودن و خیلی خوشحال میشن که میگیم علما میرن و میزن الله بی اطراع بد بیگن اما علی خودش عمرش را با تدریس حدیث قال الله و قال رسول الله صلی اللہ وسلم استاز اولی مولانا محمد اومد پدر وزرگی من از قرآن و قاید بغدادی رو و پنج کتاب رو اولین کتاب از پدر وزرگی من خونده بعد وارد دیگه رفت و پاک پنجور دیباره پاکستان رو و در دالوم کراسی فارغ و تحصیل شد یه نقطه ای بگم مولانا محمد اومد اومد ملازی رحمت الله علی همین آخر زود پیش و شکسته شد یعنی سنش این نبود که شکسته شده بود اومد جامع جامعه فاروقیه شاگرد مولانا سلیم الله خان هست مولانا سلیم الله خان زمانی که جشن پنجاه ساله برگزار شد در دارلوم کراچی حضرت تشریف آورد من اونجا بودم به ارحال یک سفری میاد کراچی چون که شاگرد مولانا, محمد مولانا سلیم الله خان بود میره خونه در میزنه که من اومدم استاذ را ملاقات کنم هست استاد محترم کسی درواز میکنه میبینه خیلی شکسته هست بولسدیم الله و این شکسته نبود میگه شما استاد سلیم الله خانی یوه استاد شما است میگه نه نه نه اون استاد من شاگردم یعنی این شکسته بود بعد میگه که اونو نشناختن میگن که من استاد بودم مرد سلیم الله هم خیلی میخندن که یعنی شکستنی شو اینجوری در انسان متقی و اهل الله و همیشه با اولاما اهل علم محبت داشت به علم محبت داشت همیشه از علم از علما تعریف میکرد تا همین اخیر وفات تر یکی پایبند خود احکام خیلی زیاد بود به حجاب و مجازی خیلی حساس بود و زندگی سوز دو نوش وقتی ازدواج داد که رفت من رفتم اونجا شب زفاف بود خاصتا که اقدامات برن به خجله، رفت تو خونه خود مولانا به من گفت الان برای این جوان ها صحبت گفتن الان وقت صحبت مراسم ازدواج خوشیه. خودش شروع کرد خودش شروع کرد از گفت که چه مشکلات ایجاد شده همین که دنبال بعض نموس مردم بود آخه به خواهر و دختر خودش میرسه همین آقا داستان تعریف کرد و آخی فرموده من یک داماد خودم میبرم هیچ کس نیاد محرم نیستن پدرش بیاد که محرم بس هست و و تا و خالی که تازه تا خالی نبایشه میگه داما داخل نمیاد. یعنی این قدر پایبندی آقا بی توجه نبود که حالا حالا شبیه آخری حالا خودم چی کار میکنم میگویم نه تا آخر اونجا رفت و داما حبیل عروس داد یعنی پایبند بود به شریعت پایبند بود به اسلام همه علامت پایبنده اما ویرجی بارزی که تا آخر عمرش هم به حجاب اینا خیلی حساس بودن. یه چیز دیگه هم بگم یه وقتی فارغ تأثیرش شد اومد چون از کلگان کل هست و این تا تازه فارو تحصیل شده اومده که والد محترمه ما تعریف میکرد کرد که اونجا دیگه از جلو مردم هجاب کرده صورت رو مکسر کسی رو خانواده هر خان خودش صورت رو می میشید کسی رو نبیم بوده خوشصالی بوده می داخل عیدگاه هنوز دستها پای ناورده بار اومده این هم از مستجاب و دعوات